ما هرگز مرتد دین و منافقین را نمی بخشیم هرگز کسانی را نمی بخشیم که در مقابل دالر اینا چیز ایمان ایمانشان را فروختند برای دشمنان هرگز این اجازه را نمی دهیم که آنچه را که قایم کرده ایم سقوط دهند یا آنچه را که بنا کرده ایم منهدم کنند از ما بشنوید آیا گمان میورید ما از بین می رویم آیا خیال می کنید که ما نابود می نه والله. تا قیام قیامت ماندگار ما خواهیم بود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 السلام علیکم و رحمت الله و براکتو شنوندگانی مامین و مسلمان و خبرهای دولت اسلامی از صدای خلافت خوش آمدید نخست از همه توجه شما را به سرخط چند خبر جلب می‌دارم. پیشروی گسترده دولت اسلامی در ولایت حلب سلیل سوایب بازگشتی زنده یک استشهادی در فلوجه کشته شدن چار معارزی سوری در اعزاز، تشدید در گریه ها در میدان نفتی ولایت کرکوک، حلاکت ششت سرباز رافیزی در شمال غربی فلوجه، و, و, و, و کشته و زخمی شدن 22 کرد ملحد در تلعفر. صلیل الصواری نشید الباب و درب القتال طریق الحیا عبینا دحامه یبید الطغاء و سریم صدای و این هم تفسیر خبرها تعزیر خبرها از شام حاکی است که نیروهای دولة اسلامی مناطق کفر کلبین کل جبرین وندا نیارا کفر و تلحسین را در نزدیکی شهر اعزاز تحت کنترل در آوردند این پیشروی طی یک سال گذشته بزرگترین فتوحات دولت اسلامی در ولایت حلب به حساب می‌آید در همین حال در اثر انفجار یک موتربم در جاده ارتباطی میانی منطقه‌ای کفرکلبین و شهر اعزاز 4 تن از نیروهای معارضی مسلح کشته شدند این حادثه زمانی صورت گرفت که نیروهای مخالف مسلح سوری خواستند تا به سوی منطقه کافرکلبین تا یک حمله پیشروی کنند. یک حمله کننده استشاری تجمع نیروهای نظام سوریه را در اطراف ایستگاه پانوراما در جنوب غربی شهر دیروزور هدف قرار داد. در اثر این عملیات تلفات جانی و مالی به دشمن وارد گردید. در یک خبر دیگر آمده است که مجاهدین دولت اسلامی تلاش پیشروی نیروهای نظام را به سوی جبل سرده در جنوب دیروزور ناکام گذاشتند. بازگشت زنده یک استشادی در فلوجه، یک حمله کننده استشادی حوالی دیروز بالای نیروهای اراقی در شمال غرب فلوجه با موتر مملو از مواد انفجاری حمله کرد، پس از آن که انفجار صورت گرفت، شدت انفجار استشادی مسکر را به بیرون از محل حمله انداخت، زمانه که استشادی احساس کرد که زنده است، سوی خطوط مجاهدین را گرفت و زنده و سلامت به مجاهدین پیوست، در همین حال یک جنگنده آمریکایی در منطقه المعامل در جنوب شرقی فلوجه سقوط داده شد. مجاهدین دولت اسلامی یک تانک نیروهای راقی را با موشک هدایت شونده در شرق فلوجه آماج قرار دادند. در اثر این حمله تانک مسکر به طور کامل از بین رفت. در همین حال یک حمله کننده دیگر پایگاه های نیروهای راقی را در منطقه سیجر واقع در شمال شرق فلوجه هدف قرار داد. تخمین زده دولت اسلامی 8 سرباز عراقی را در اطراف جزیره خالدیه در شمال غرب فلوجه با سلاح دراسکوف کشتند جنگنده های آمریکایی به طور اشتبا یک موقعیت گروه های مخالف سوری را در شهر مارع در حومه شمالی حلب بمباران نمود تخمین اندازون دولت اسلامی با استفاده از سلاح دراسکوف 6 تن از نیروهای عراقی را در منطقه البو عزیز واقع در شمال غربی فلوجه به هلاکت رساندند یک درگیری میان نیروهای دولت اسلامی و کردان مسلح در نزدیکی میدان نفتی عجیل و علاسی ولات کرکوک رخ داد در اثر این درگیری یک پایگاه دشمن به طور کامل آتش گرفت و چندین پایگاه دیگر خسارات مالی دید همچنان در این جنگ سه سرباز دشمن کشته شدند نیروهای دولت اسلامی بالای تجمع از واکر در اطراف منطقه البو عبید در شمال رمادی حمله کردند در سر درگیری هایی که میانی مجاهدین و اساکیر دشمن رخ داد سه ارادتان که نوی هممر دشمن از بین رفته و تعدادی از اساکیر کشته شدند دو عملیات استشادی دو موقعیت معارضین سوری را در محیط شهر مار در خومه شمالی حلب آماج قرار داد مجاهدین دولت اسلامی بر مقررات نیروهای کردی در شندوخه واقع در شرق طلافر حمله کردند در سر درگیری هایی که میانی دولت اسلامی و کردان رخ داد نو کرد ملحد کشته و 13 تن دیگرشان جراحت برداشتند. دامنه حملات نیروهای دولت اسلامی بر روستای وردیه در غرب شهر سنجار و منطقه دومیز در داخل شهر گسترش یافت. در همین حال یک خبر دیگر می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی بر موقعیت‌های های کورد در روستای سینو، تقاتکولات و کارخانه سیمان در شرق شهر سنجار حمله کردند. شهر سنجار پایگاه اصلی نیروهای کردی باشد که سالها شاهد درگیری ها میان مجاهدین و نیروهای دشمن بوده است. یک خبری رسیده از لیبیا میرساند که هفتن از مسلحان فجر لیبی در منطقه الخمسین در غرب شهر سرد کشته شدند. این نیروها زمانی کشته شدند که یک درگیری شدید میانی مجاهدین دولت اسلامی و همین نیروها در منطقه خمسین در غرب همین شهر رخ داد. خبر می‌رسد که در این درگیری همچنان چندین موتر نظامی دشمن از بین رفته است این بود تازه‌ترین تحولات و پیشروی‌های دولت اسلامی صليل <تصفيق> یک خبر خوش به تمام مجاهدین دنیا الله کریم از دست یک مجاهد دلیر خلافت در شهر فلوجه کرامت را صادر کرد که تمام مؤمنان و کفار حیران ماندند که در این حال مؤمنان خاطر سپاسگزاری رب زلجلال سجده افتادند و در قلوب کفار رعب داخل شد این کرامت در حال از دست مجاهد صادر می شود که شیعه های رافیزی در شهر فلوجه عملیات گستردهی را انجام داده بودند و در عملیات خود موفق نشده بودند ولی الحمد در این حال مجاهد دلیر خلافت به مانند شیر غوران در مقابل این مشرکین به خشم آمده و به خاطر رضامندی الله که صاحب عرش بزرگ است خود را به عملیات استشهادی آماده میسازد و به همه مؤمنان اطمینان میدهد که این دشمنان الله و رسول را ان شاء الله اسباد در میآورد در همین حال موتر را پر از مواد منفجره کرده و در حال آماده رفتن به سوی مشرکین می شود و با دوستان الله حافظی می کند و ایشان را اطمینان می دهد که الله من و شما در جنت باز هم یک جا خواهیم بود <تصفح> برادر استشهادی در حال حرکت به سوی رافیزی های مشرک می شود و دوستان به طرفش نگاه می کنند که برادر استشهادی چی وقت به هدفش می رسد. برادر استشهادی خود را در حال به هدفش میرساند که تمام مشرکین، مرتدین و کفار به حیبت می آفتند. و همه ایشان ورخطا شده و هر کس به فکر نجات خود می شوند و ما برای این مشرکین و کفار میگوییم که شما نجات نخواهید یافت و اگر در دنیا نجات یابید از عذاب آخرت نجات یافتنی نیستید در این حال برادر استشهادی در میان دشمنان الله موتر بم را که با خود دارد انفجار میدهد که تعداد کسیر از مشرکین را به جهنم روان میکند و الله کریم خود این مجاهد را توسط ضربه همین انفجار جای دور پرتاب میکند و برادر مجاهد هیچ کدام آسیب نمیرسد الحمد <سؤال> لله برای تمام کفار و مرتدین اختار است که بدون کدام چون چرا تمام خاک مسلمین را رها کرده و خود را به حق تسلیم کنند در غیر آن با چنین تلافات مرگبار روبرو خواهند شدند که در دنیا هم خار و زلیل می شوند و در آخرت هم <تصفيق> <تصفيق> للقتل نسعى که نجود بمهجت ما بعدها جود فهلا نعذرو تأبت تعرض للطام خدودنا وعلى الثرى بعد الطعان تعثروا ما مات منا سيد بفراشه أو كان في سوح الوغى يتأخره وإذا تجندل قائد منا على في إسره شهم جواد قسوره والقتل للأشراف ليس بسبة ود النبي القتل لو يتكرر والقتل في ذات الإله كرامة إن الشهادة للذنوب تكفر والقتل خير من حياة مذلة تنهل لأام بحكمها أو تأمروا يا رب فشدد أزرنا حتى ترى أشلاءنا لك قربة تتناثروا يا رب فشدد أزرنا حتى ترى أشلاءنا لك قربة تتناثروا. برخیز هموته کنون وقت سنگر است در اهتزاز پرچم الله اکبر است برخیز هموته کنون وقت سنگر است در اهتزاز پرچم الله اکبر است فرشاد انقلاب تومان سلام گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنونده های رادیو صدای خلافت در برنامه امشب خود می که یک مقاله کوتاه را بر شما تقدیم بکنم که در این مقاله تعریف اسلام امریکایی می باشد که اسلام امریکایی چیست از کجا وجود آمده چرا وجود آمده و اسلام امریکایی فعلا در افغانستان وجود دارد یا خیر اسلام را که امریکا می خواهد چی آن را چونین تعریف می کند دنیای صنعتی نوین امریکا و در مجموعه جامعه بین المللی چنان اسلام را می خواهند که با دیگر جهان در یک مسیر حرکت نماید دیموکراتیک و مترقی باشد و مطابق قوانین احکام و اخلاقی جهان سیر نماید تعریف مذکور نقاط زیل را مشخص می نماید. اول اسلام باید طبق خواسته امریکا و جامعه جهانی باشد دوم اسلام باید یک تشخص تشخصه علیحده و نظام مخصوص از خود نداشته باشد بلکه با نظام های دیگر جهان یکسان باشد سوم اسلام باید دموکراتیک باشد بدین این معنا که از طرف مردم به میان بیاید نه اینکه بر مبنای وحی استوار باشد چهارم اسلام شکل کهنه خود را ترک کرده و شکل جدید و متراقی را برگزیده باشد پنجم این اسلام باید در بخش احکام و فلسفه اخلاقی با احکام و اخلاق غرب و بعد از این تعریف طرح مذکور در همین صفحه در مورد پشتیبانی و تشویق پیروان اسلام آمریکایی چنین می‌نویسد این یکار حکیمانه خواهد بود که از آن ایدا مسلمانان حمایت و تشویق به عمل بیاید که با صلح جهانی و جامعه بین المللی هم رکاب گردیده‌اند و دموکراسی و تمدن را از خود می نمایند. جمله فوق و ذکر حاوی مفاهیم آتیمه باشد اول از همه مسلمانان پشتیبانی صورت نگیرد بلکه پشتیبانی باید از عناصر خاص انجام یابد دوم پشتیبانی باید از عناصر صورت گیرد که با کفار هیچ مشکل نداشته باشد بلکه با آنها یکجا تحت چتر امنیت و صلح جهانی زندگیشان را سپری نمایند و بر جهان هیچ باور نداشته باشند اگرچه کفار بر مسلمانان هر نوع مظالم را روا داشته باشند سوم حمایت از مسلمانان صورت گیرد که دموکراسی را منحیث خط مشی زندگی و تمدن غرب را منحیث شیوه زندگی خود پذیرفته باشند این طرح عامل جدایی میان مسلمانان و کفار را دوری مسلمانان از فرهنگ غرب آن را فرهنگ بین المللی باید خواند و در این بخش چنین است دورماندن مسلمانان از فرهنگ معاصر بین المللی زمینه تیرگی روابط و مشکلات را میان آنها و دیگران ماحیان نموده است. معنای عبارت فوق ذکر این است که روابط میان مسلمانان و دیگران تا آن وقت تیره خواهند بود که مسلمانان فرهنگ اسلامی خود را ترک نکرده و فرهنگ جهانی را از خود نکرده باشند و هر زمان که فرق میان دو فرهنگ از بین برده شود، اختلاف میان مسلمانان و کفار خود به خود از میان خواهد رفت و این تعبیر دقیقا همان مفهومی است که الله عز وجل در قرآن کریم از آن چنین یاداوری نموده است الله تعالی در سوره بقره آیه 120 بیست می فرماید ولن ترضا یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم یهود و نصارا هرگز تو راضی نخواهند شد مگر اینکه ملتشان را بپذیری یعنی دینشان را بپذیری و این یک سخن آشکاره که نظام و فرهنگ جهانی امروزی را یهودان ایجاد و دیزاین نمودن و نصارا که بریتانیا و امریکا در رأس آن قرار دارند در همه جهان آن را تدبیق میکنند و به هدف عملی نمودن همین فرهنگ جهانی همه جهان اسلام را میدان جنگ دردانیده اند تا اسلام امریکایی نوین خود را در آن عملی سازند پلان پخش و نشر اسلام امریکایی چونین است یک نویسنده در کتابش پلان منظم را به هدف تقویه نقش پیروان اسلام امریکایی تقدیم نموده و به حکومت امریکا تای آن چنین توصیه می نماید. برای اینکه که و مدرنیزم در جهان اسلام توسعه یابد و به هدف پیوستان به نظام جهانی معاصر تحول مثبت در جهان اسلام رونما گردد بر امریکا و عرب لازم است تا با دقت و جدیت تمام در جستجوی آن عناصر از مسلمانان باشند که تقویه اسلام امریکایی را میخواهند و همچنان بر امریکا و رفقایش لازم است تا برای این افراد اهداف و ارزشهایی را تعین نمایند و به این مطلب نیز آگاه باشند که با حصول پیشرفت در کارهای این عناصر چی نتایج به دست می آید. ممکن است برای تقویه آنها برنامه های زیل در نظر گرفته شوند اول نوشته ها و مطبوعات این عناصر باید چاپ گردیده و به قیمت ارزان به دست نشر سپرده شود دوم این عناصر و گروهها باید تشویق شوند تا برای عامه مردم و نسل جوان بیشتر بنویسند. سوم نظریات و افکار اینها باید در کتابهای دنیات نصابهای تعلیمی گنجانیده شود. چهارم رادیوها ها رسانه های جمعی و منابع سخنرانی باید در اختیار آنها قرار داده شوند. پنجم تعبیر و تفسیر را که آنها از احکام و مسائل اسلامی می نمایند باید در میان مردم عام شوند تا بتوانند با بنیادگره که مدارس، معاهد و کتابخانه ها در اختیار دارند و از وسایل الکترونیکی اصلی نیز در پخش و نشر نظریات خود استفاده می رقابت نمایند ششم علمای مدرن و سیکولر باید به با پیمانه وسیع به مردم معرفی شوند تا از طریق آنها عواطف و احساسات حیجانی جوانان خشمگین مسلمان سرد ساخته شوند. هفتم مراکز نشراتی باید تشویق شوند تا کتابهای را در رابطه به دانش، تاریخ و فرهنگ غیر اسلامی به نشر بسپارند و تسهیلات در امر چاپ و نشر آن برای آنها فراهم شوند. و این گونه معارف باید در نصابهای تعلیمی کشورهای اسلامی شامل گردند و هم در مطبوعات به نشر سپرده شوند. و مخصوصاً آن تاریخ و معارفی که قبل از ورود اسلام در این کشورها وجود داشتند باید بیشتر نشر شوند هشتم باید کمک شود که تشکلات مستقل احزاب و اتحادیه‌ها به نام جامعه مدنی با وجود آیند تا فرهنگ جامعه مدنی در میان مردم رواج یابد و همچنان به مردم فرصتهای آموزش، اجراعات سیاسی و آزادی بیان مهیا گردد شناوندهای گرامی این بود نقالی که تقدیمتان کردیم از توجهتان سپاسگزار هستیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وحدت الله حقیقت مو دشمن و لیسا سازش هر نوع اثارته ایموسی اللهم محمد شعالما روز شب حم به شهادت ایمان موسی و و محمد شعالما ما روز درس های از توحید معنای کلمه شهادت لا إله إلا الله محمد رسول الله درس اول معناي لا إله إلا الله و در موضوع دیگر چنین می و لقد بعثنا فی کل اومت رسولا انی الله وجتنی بالطاغوت، و بیقین با ما بامیان هر امتي پامبری را فرستادیم تا به مردم بگویند، الله را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید. الله جل جلاله در قرآن کریم داستانهای پیانبران و اقوام آنها را بیان نموده است، که اولین دعوت پامبران به سوی عبادت الله به یگانگی بوده است، همچنین چنین عاقبت مؤمنانی را که دعوت پیامبرانشان را لبیک گفتند و عاقبت مردمان سرکش که فرستادگان الله را تکذیب نمودند و با او تعالی شریکانی قرار دادند که هیچ دلیل و برهانی بر آن نداشتند را نیز بیان داشته است الله جل جلاله فرماید لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم الله ما لکم من اله غیره إني اخاف عليكم عذاب یوم عظیم و همانا نوح را سوی قومش فرستادیم و او گفت ای قوم من الله را برستيد شما معبود بر حق جز او ندارید همانا من بر شما می ترسم که دوچار عذاب آن روز بزرگ شوید و می فرماید و الى عاد اخاهم هودا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ و بسوی عَادٍ بِرَادِرِ برادر شانهود را فرستادیم گفت ای قوم من الله را بپرستید جزء معبودی برحقی ندارید آیا پرهیزگاری نمی ورزید و می فرماید و قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وبسو سموت برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من الله را می‌پرستید شما معبود به حق جزء ندارید و نیز می‌فرماید و الى مدينه اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم و گفت ای قوم من الله را بپرستید شما معبودی به حقی جز ندارید و میفرماید و اذ قال ابراهیم ابراهيم و وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين و به یاد آنگاه که ابراهیم به پدر و قومش گفت من از آنچ می پرستید به جز آن معبودی که مرا آفریده است و او مرا رهنمود خواهد کرد و فرمود: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله بائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و له مسلمون آیا شما حاضر بودید وقتی که مرگ به یعقوب فرارسید آنگاه که به فرزندانش گفت پس از من چی چیزی را گفتند معبودت را و معبودی پدرانت ابراهیم اسماعیل و اسحاق را می پرستیم که معبودی یگانه است و ما فرمان برداری او هستیم و از زبان یوسف علیه السلام می فرماید متفرقون خیر ام الله الواحد القهار آیا خدایان گوناگون جو بهترند یا الله یگانه و غالب؟ همچنین دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به جهانیان به سوی توحید و یکتاپرستی بود، چنانکه الله میفرماید: "و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین. قل انما یوحى الی أنما الوهکم اله واحد فهل انتم مسلمون؟" و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم بگو جز این نیست که به من وحی می شود که پروردگار شما الله یگانه است پس آیا شما مسلمان هستید؟ چون دعوت همه پیامبران سوی توحید است، پیامبر صلی اللہ علیه وسلم نیز نخست مردم مکه را به یک پرستی الله جل جلاله دعوت دادند، و از آنها خواستند که بگویند معبودی برحق نیست مگر الله یکتا و به هم و از بود پرستی دست بردارند، لاکِن بيشترشان تکبرانه از دعوت آن حضرت صلى الله عليه و سلم ای و به عبودیت الله سبحان گردن خم نکردند چنانکه قرآن کریم در مورد آنان میفرماید ان هم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ا انا لترك الهتنا لشاعر مجنون آنان چنان بودند که چون به آنان گفته میشد معبود راستینی جز الله نیست استکبار می و می گفتند آیا معبودهای خیش را خاطر سخن شاعری دیوان گوییم ولیکن الله سبحان سخنان آنها را رد نبود فرمود بل جاء بالحق و صدق المرسلین بلکه حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است بناان کلمه توحید یا کلمه طیب کلمه حق است کلیمه که پیانبر ما صلی الله علیه و و همه پیامبران پیشین مردم را سوی آن دعوت نموده اند کفار و مشرکین مکه نیز که دعوت بلا اله الا الله به این معناست که ایشان باید عبادت غیر الله را ترک کنند زیرا توحید و یک تو پرستی تحقق نمی یابد مگر با ترک شرک و اجتنابنا مدنزان وإن معنى لا إله إلا الله ودر حديثك عمر بن خطاب رضي الله عنه رواياتنا مدأس أن حضرت صل الله عليه وسلم فرمي أنت أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله متفق عليه عمر شدم با مردم بی جنگم تا اینکه بگویند لا اله الا الله و آنگاه آن را بگوید بدون شک جان و مالش را از من حفظ کرده است جز به حق اسلام و حساب او با الله جل جلاله است و هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به فرمان روایان جهان نامه فرستادند، آنان را به توحید و یک تو الله متعال دعوت دادند. چنان چنانکه در حدیثی که عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت نموده، آن حضرت صلی الله علیه و سلم به هرقل امپراتور روم چنین نوشتند. از محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله به هرقل بزرگ روم، سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید اسلام بیاور تا در امان بمانی مسلمان شو تا الله جل جلاله پاداشت را دوچندان بدهد و اگر نپذیری گناه عموم مردم روم برگردنت خواهد بود قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمت سوای بیننا و بینکم الا نعبود الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فاين تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون بيغو اي اهل كتاب بیایید بسوی سخنی که مياني ما و شما مشترک است و آن عبارت است از اینکه جز الله را نپرستیم و چیزی را شریک او نکنیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای الله به خدایی نپذیرد پس اگر روی برگردانند بگویید گواه باشید که ما مسلمان هستیم قولتنا خراسان شما رادیو را برنامه فکری، تعلیمی و تربيوي بچه با, با دختارا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی برمان بگی که کدام کدام دعاها رو یاد داری؟ خوردن، خوردند، دعای از دعای خو کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام ازویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله، بله، اینها گلهای خراسانند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 دل گفته های اطفال خراسان دو شمب شبها از رادیو صدای خلافت ماما.